مرد تنومند آزری بر تخت سنگی که از میان گلها سرک کشیده بود نشست بعد از سه روز که از رفتنش میگذشت که از پی گفتگویی با گیل مرد در باب گل در آنی ناپدید شده بود که اصل را دیده بود که دوان به وعدگاه میآید آید دو روز شاید گیل مرد کوچک در سکوت بود و سر به زیر. آذری صبور اما در درون جوشان. اصل شاید آن دورترها لای بوته گل سکوت را میشنید نه زممه زنبوران رهگذر را. گیل مرد آقبت فاصله را در نظر گرفته با صدای بلند گفت: «آقا من دخترتان را میخواهم. آذری صدایش هم مثل جسش بود. ها. این را باش اصل مرا می خواهد. کوه الماس را همه کندوهای اصل دنیا را یک جا می خواهد. به همین بچگی دو سال در زندان نامردان ساواک بوده میفهمی؟ بله آقا دو سال سخت با شکنجه میدانم از تو خیلی سر است از هر لحاظ میدانم شاید برای همین هم میخواهمش. قدش دو برابر توست اما من خودش را میخواهم نه قدش را. قدش را چطور از خودش جدا میکنی؟ کنی؟ بسته جدا کردن ندارم آقا هلو را با هسته میخرند. اگر بخواهند هسته را جدا کنند و بخرند خیلی زشت میشود، اما کسی هم هلو را به خاطر هستش نمیخرد. عجب ناکسی هستی تو دستکم حرف زدن می دانم دبیر عدبیاتم. سر سربلند کردم تا مرد را که تکانی خورده بود ببینم آزری از روی تخت سنگ برخاست گلشاخه ها را کنار زد و جلو آمد از چشم گیل مرد کوچک آزری ابتدا نیم تنهی تنومند بود با دست های خشن آشنا آنگاه فقط صورت بود. سوخت زیر آفتاب سرد سوالان و سرانجام نگاه، نگاه آنکس که برای له کردن له شدنیها میآید یا خرد کردن خرد شدنی ها. تا باورم و سرفرو نیانداختم. تا باورم چرا که جرمم فقط خواستن بود و به این جرم بد میکشند. اما آنکه کشته می شود صرف کننده نمی شود تو گیل مرد کوچک اندام نازک دل که سربزیری خصلت نجیبانه توست چطور توانستی آن نگاه سوزنده پدرم را تا بیاوری تمام صحرای گل شده بود یک جفت چشم و من میدیدم ها. چطور می توانستم تاب نیاورم و باز تو را در کول بارم سوغات بیاورم و من میدانستم که تو می بینی صدای اتر تو از صدای تمام پرندگانی که گروهی می خواندند بلندتر بود آزری با آن صدای بی گذشت پرسید عاشقش شده ای گفتم عشق نمیدانم چیست بی تجربه هم، تازه کارم، نمیدانم اینطور خواستن اسمش عشق است یا چیز دیگر فقط سخت می‌خواهمش سخت خواستن میتواند عشق باشد گفتند به شرط آنکه سخت بماند و نرم عجب کلکی هستی تو گیل مرد کوچک به زبان خاصی میستاییدم نمیستایم می آزمایم آزمون هایتان به کاری نمی آید آقا بیش از آن می خواهمش که تجربه کارا باشد اما اگر او تو را نخواهد گریه کنان میروم پی کارم دوست داشتن یک طرف می شود اما به ضرب تهدید نمی شود و این آن چیزی است که سلاطین می خواهند. مردم آنها را بپرستند آنها از مردم بیزار باشند من نه سلطان عدبم نه سلطان اصل اگر نخواهد و بدانم که هرگز نخواهد خواست گریه کنان کول بارم را بر می دارم و میروم. فقط همین اگر گریه کنان بروی، تا کی گریه می کنی؟ آقا پیشا پیش چطور بگویم برای گریستن برنامه ریزی که نکردم به اشاره سخن از خصلت اصلی سلاطین گفتی سیاسی هستی منظورتان چیست آقا؟ شما همه سالهای سخت سخت میکنید من شاگردانم را این طور نمیازارم علیه شا علیه حکومت من دبیر ادبیاتم. چه ربطی دارد نمی شود که کسی ادبیات این آب و خاک را خانده باشد و بر کنار مانده باشد که برد به نزد شاهان زمن گدا پیامی که به کوی می فروشان دو هزار جنب جامی من از عاشقان ناصر خسرو قبادیانی هستم تو که از عشق چیزی نمیدانستی؟ از عشق به زن نه عشق مردم سیه روزگار وطن این ناصر خسروی تو چیکار است؟ شاعر است آقا، است؟ از اهالی قبادیان بلخ است آقا، از آذری ها کدامشان را می خواهی؟ اصل را، عجب نا کسی استی تو، منظورم از شاعران بزرگ آذربایجان است، باز هم آقا فرقی نمی کند، شاعر که نباید قطعا شعری گفته باشد، شعر آفریدن بسیار کم از آن است که شعر را زندگی کنیم، یک پرده نقاشی بسیار زیبا سوای آن است که زندگی را به یک پرده نقاشی زیبا تبدیل کنیم از حرف زدنت پیداست که چیزهایی میدانی اما دست کم بگو که متعلق به کدام گروه و مکتبی کدام باور کدام راه و رسم نمیتوانم دائما میاندیشم شب و روز در تمامی لحظه ها در باب راهم، مکتبم، هم، مردمم، وطنم. من متعلق به نفرت از اسارتم و نفرت از استبداد. اما به باورداشتن عادت نمی کنم. می گویم، تو هرگز به خاطر وطنی که به عادت دوست داشتنش مبتلا شده ای، به جان نخواهی جنگید. هرگز به خاطر مردمی که به مهرورزی به ایشان عادت کرده ای، زندگی نخواهی داد. نمازی که از روی عادت خوانده شود نماز نیست تکرار یک عادت است نوعی اعتیاد حرفه‌ای شدن پایان قصه خواستن است عادت رد تفکر است و رد تفکر آغاز بلاحت است و ابتدای ددی زیستن انسان هرچه دارد محصول تمامی هستی خیش را به اندیشه سپردن است و من پیوسته میاندیشم که کدام راه، کدام مکتب، کدام اقدام در فرو ریختن این بنا میتواند تواند تأثیر بیشتری داشته باشد مغزت را با این کار له می کنی مرد آوارگی اندیشه دیوانت می کند به چیزی ایمان بیاور و مؤمن بمان. دیگر نی تا شک کنی فقط بنده آن ایمان باش بنده آن چه که با قلبت قبول کرده ای همین فکر خوبی است آقا در این باره نیز پیوسته فکر خواهم کرد عجب ناکسی هستم من نه این اصطلاح را به عادت به کار میبرید به همین دلیل هم شتابان رنگ میبازد بار اول برایم لذت و اعتباری عظیم داشت بار دوم شیرین اما بی اعتبار بود بار سوم دانستم که چیزی جز یک تک عادت نیست در این بار من هم فکر خواهم کرد گیل مرد کوچک اما از اینطور حرف زدنت پیداست که اصل مرا داغ به دل خواهی کرد خیلی زود او داغ به دل دارد آقا به تفصیل برایم گفته است پس نمیخوای با او زندگی کنی میخواهی دستش را بگیری ببری به آن جنگل پر و تفنگ دستش بدهی. من میخوا با اصل زندگی کنم. شادمانه و شیرین و سرشار بدون تفنگ بدون حتی یک پوکه اگر بگذارند خب روشن است که نمیگذارند. مرز را انتخاب کرده اید مرض بدی هم هست. یک گاو گر. گله را گر می کند حکومت نمی نشیند تا بیمارانی مثل شما با این بیماری مصری تمام گله خاموشش را بیمار کنید آنچه شما گله می نامید آقا گله نیست یک گروه بزرگ عاشق صادق است و به ظاهر خاموش پنج هزار سال است که به ظاهر خاموش است و صدها حکومت را با سر زمین زده است و غلامان و خاجگان خاموش و وفادار دربارها صدها سلطان را به صدها صورت تکه تکه و سوراخ سوراخ کردند و به دار آویختند و قلبهای سربیشان را خنجر نشان کردند غلامان و خاجگان به چیزی بیش از سلاطین وفادار بودند و مردم ما میدانند که در تن سکوت چگون زهری جاری است تو تو تو خطرناکی، گیل مرد کوچک، اعتقاد خطرناک است آقا و عشق از آن هم خطرناکتر است، من میدانم بگو، چون که ما جز گفتن، هیچ چیز نیستیم عشق نوعی گفتن است و عالی ترین نوع گفتن جنگ هم گفتن است، ایمان هم گفتن است نگاه کردن یک واجه نرم است خدا کلمه بود برای انسان خدا چه چیز به جز کلمه می تواند باشد احساس عظمت مطلق کمال مگر اینها جز کلمات خوب چیزی هستند اصل، بگو دوست داشتن را بگو ایمان را بگو کمی خلوص کافی است تا جهان به یک واژه مخملی تبدیل شود حال بگذار بر زانویت بگذارم و تو به زمزمه از نخستین سفر گیل مرد کوچکت به سوالان بگو. پدرت آن بار همگری یادت هست ؟ آن بار به خاطر اینکه گمان می تو را به مهمانی مرگ میبرم. این بار برای آنکه گمان می کند. برادر کوچکت را از دهان مرگ بیرون کشیدم اصل در خود فرو رو سکوت را خارا نکن از سوالان بگو همیشه با یک دست گل کوتا